و آله قسونیم و, و, و لعصود دارمت علا اداره اجمعین اللهم و مشترین مناسبت بحث حجیث زوافق بحث اینجا منتحی شد که بخشی جمعه از احلام. یک مدلول تصدیقی به مراد جدی به نحوه اراده جدی به اولاقیان در کلام تصویر کردن در مقابل مدلول تصدیقی به نحوه اراده استعمالیه راجب این کلمه اراده جدی و استعمالی توضیحی رو نخواستم اعضب کنیم صورتی رو در تفسیر اراده جدی و مراد جدی از صورت سوم که محل کلام بود روز آخر ارز کردیم که خود کلام با قطع نظر از اون جهات دلالت ظاهریش دارای یک واقعیتیست و یک حقیقتیست که در مفتن واقع و در مفتن حقیقت در مفتن واقع داره با قطع نظر از مدلول کلام و ارز شد که این معنی این واقعیت رو نباید ما با مدلول لحظی خرمتو بکنیم به نظر خود ما یه مثال خیلی ساده و قرفی رو ارز کردیم مثال و توضیح بیشتری بگیم فرض کنید یک حبیبی به یک شخصی با نگاه کردن به حالش که شما روزی دو لیوان آب بخور. از کردیم این مفهوم و عرفی بسیار واضحی داره و همین کلام رو وقتی به لحاظ به لحاظ واقع نه به خود مدلود کلامی بررسیب میکنیم اصلا فهمیم یک رابطه بین این شخص و این مقدار آب که اصلاحاً دو لیوان نیم لیتر لیوان متعارد نه لیوانه بیشی نیم آب در 24 ساعت رابطه ای وجود داره این... وقت ما به حسب مقدار علممون به مقدار آگاهیمون، سعی میکنیم این رابطه رو کشف بکنیم یعنی سعی میکنیم بیان خودمون بفهمید نه اینکه یعنی به اصلاح پیدش ولی این است و از سر اون واقعیتش این طوره که هر انسانی داره این خاصی از سلول هاست مزاج خاصی داره در هوای خاصی در مکان خاصی است این خصوصیتی خودش داره این رو میتونن علم حالا یا قدیم یا جدید تب قدیم یا جدید اندازگیری حتی دقیق بکنن که چینین انسانی با چین خسارتی، با چین مقدار کاری که روزانه داره در چین محیطی که زندگی میکنه در این فرس باها تابستان این سلول‌های رای نیاز به نیم بیست مطابق دارن خب طبیعتاً توی این مقام علمی و کشت شما همیتون بریزه من جلو اتاقش های علمی و امکانات علمی شما بیشتر میشه دیگه خواهی نفهید همینطور شما فرصت براتون بازه و حتی میشه کاری کرد که انسان به نحو دقیق خیلی دقیق مثلا بگه نه آ ما بنده های بسیار دقیق تمام اجازه در گرفتید فقط من نیاز به میلی لیتر الا مثلا 10 سی سی آب یعنی 0.90 سی, سی سی مثلا آب احتیاج داره نه میلی لیتر این طور ممکن است که انسان پیشرفت بکنه و کرده هم نهی که بحث در اینجا در این مطلق خوشه بحث نیست بحث در اینجا است وقتی شما این کلام را از این طرف میشنوید آیا این تحقیقات علمی هم تو اون خابیده بله این تحقیقات علمی در متن واقع هست اما در مدلول لفظی نیست تمام صحبت اینه اینها در متن واقع وجود داره یک واقعیتیست اما در مدول لفظی همون لفظ فهم ارفیه عام دو لیوان آب بخور روزانه دو لیوان آب بخور یک مفهوم خیلی ارفیه بسیطی رو داره ما اگر هم بفهمیم که این آبا مثلا چی جور محاسبه کرده دقیق بوده نبوده مثلا یک فرد عرفی بوده گفته انجام بدهی. طریبی بوده یا در درجات ابتدایی رشته علمی خودش بوده یا در درجات انتهایی بوده اینا رو ما همه به نحوه اجمالی یک نوع دلالت سیاقی در میکنیم این اینه؟ یک نوع دلالت سیاقی هم نه دلالت لفظی یعنی ما میدونیم این آقا حسن مثلا یه رابطه نگاه کرد یا نگاه نکرده نگاه میکنیم فرد عادی یا پدری مثلا دوریوان دو آب بخور این رابطه نگاه نکرده اما دکتر فرض کرده بررسی کرده طبیبه و به این نتیجه رسیده که باز بود دو دوریوان آب بخور مثلا ما میفهمیم که یک نوع خبروییتی در کلام این یکی هست که در کلام اون یکی نیست لیکن این خبروییت رو بشت این تحریقات رو بشت این نکات رو بشت رسیدن این رو اصطلاحاً مدلول لحظی نمیگرد چرا؟ چون اینها در واقعش وجود داره ربطی به مقام لفظ یه نوع مفهوم و اینو نوع امر ارادی و اختیاریز نیست مثلا این عمر ربطی به مقام ورز ندارد اگر دلالتی باشه به نحو بسیار اجمالی که میگیم این آقا چون طبیبه تشخیص داده و این دلالت هم سیاقیه یعنی ما اینجا یک واقع داریم یک رابطه این شخص با واقع داریم رابطه این شخص با واقع به لحظ گفته نشده رابطه این شخص با واقع با یه دلالت سیاهی بنام شده این نفتیار رو بقدر فرمون و در این واقع هم اگر باز دقت بیشتری بشه دو نحو ممکنه مطرح بشه نه یک نهر یک نهر که عرض کردیم شما بگن آ ما آماد این تحلیل دقیق کردیم فهمیدیم این شخصی در چین هوایی با چین کاری که داره این واقعا روزانه نیازه به نیم لیتر آب داره مثلا این ما تحقیقات علمی کردیم. این یه مرحله کار یه مرحله کار میان باز متقیقیت ها را هم میگن میگن همین شخصی یک مالیه که هوا سرتر میشه یک گیوان نیم آب میخواد تبقیه این تحقیق بکنه. طبقی این شناختی که ما پیدا کردیم همین شخص بعد از یک معاملی دیگه یک لیتر آب می‌خواد. اما در تابستان که بیاد همین شخص با این مزاجه فرض بگیریم چار لیتر آب می‌خواد. تو بهار مثلا و دول، دولی و نیم آب دقد می کنی. یه پس شما یک کشف واقع دارید یه روابطی که واقع باز با واقعیت های دیگه داره در اصطلاح یعنی اصطلاح معارف دینی ما اون کشف واقع رو تفسیر میگن و اون روابطی رو که واقعیات دیگه پیدا میکنه تردیر میگن این فرمه بین تردیر رو تفسیر که این که اینو دین که از کنم که ببینید من یک مثال عرفی که خیلی روشن بشه در که این مطلب چجوریه یک مثال بسیط و عرفی زدن یک به بیماری نگاه به شخص نگاه میکنه توصیه طبیعی لازم از بیمار هم باشه راجون صالب هم میگن به, به اصطور ما بهداشت را و سهه از که میگه شما روز دو دیوان, دو دیوان آب بخون اینجا ببینید این کلمه خودش مدلول لحظی واضحی داره یک قسمت واقع داره اون مدلول لحظی نیست اون قسمت واقع اینه که این بدن این شخص مثلا به این کاری که انجام میده مثلا به این هوا مثلا به این مزاج مثلا به تقریری که بدنش داریم به محیطی که هست این رو مقایسه که میکنه میبینه که نیازه به نیم لیتر آب داره دو لیوان نیم لیتر نیم لیتر آب رو باید مصرف رو کنه روشن شد اما این یک قسمت که و درست هم حساب هر کسی به مقدار اطلاعی که داره درجات اطلاع افراد مختلفشون واقع خودشی واحده لكن وصول افراد به واقع مختلفه این دلالت این کلام بر اینکه یک ای نوع تطابق با مزاج شخص داره این دلالت لحظی نیست این دلالت سیاقی حاکی از قورویت طبیعیه دلالت لحظی تابع یک نوع اراده است این تابع اراده نیست این تابع، این تابع خود واقعش، خود واقعش تابع اراده نیست، تابع باگیت خودشه. اون چیزی که تابع به حساب برداشته ماست وقتی نم رابطه این قائل رو با کلا نگاه می‌کنی. مثلا اگر یک انسان عادی به پسرش گفته باشه، به دخترش گفته باشه، این میگیم پشتوانه علمی نداره. یه طبیبی گفته باشه به دل... اونم ما نم بفهمیم با سیاست رو چه مهدار تا حسب خبرویت طبیع تا اون چند لایه واقع رو درک کرده باشه این لایه های واقع رو گاهی ازش تعبیر کنیم مثلا در عبارات و روایات روشن اندازه به بوتون این بوتون این لایه هاست یا در اون روایت دیگری که در کتب ارخان من دیدم در کتب حدیثی هم نذیرم نمیداره شده وجودش داشته باشه ان الله لما خلق الخلق جعل بينه و بینهم 70 الف حجاب یعنی اون واقعیت تا 70 هزار پرده داره اینطور نیست که یک پرده حل بشه لفظ فقط یه جمله بشه میگه خوب دقت بکنید اما واقعیت با خود خودش محفوزه این واقعیت چون واقعه یک ملازمات واقعه هم داره یعنی شما میتونید بگید این شخص که الان در این روز گفتی با این کارش مثلا نموزی نیم آب بخوره همین شخص در یک ماه دیگه در دو ماه دیگه با همین مزاج با همین کار با در نظر بیرسن هوای سر احتیاج به یک گیوان آب داره همین شخص با این کار در محیط قم در تابستان احتیاج به چهار گیوان آب داره یعنی ما اضافه بر اینکه به یک واقعیت میرسیم از اون واقعیت به واقعیت دیگر میشه رسیم. چون واقع همینطوره. اون واقعی که بشتیدیم رسیدن به اون واقع رو اصطلاحا تفسیر می دام. و اما رسیدن به واقعهای دیگر رو تحویی حالا چون بحث تفسیر به رعی خواهد آمد من در اونجای توضیح بیشتری از, از, از اجمالاً عرض کنم لفظ تفسیر کلا در قرآن استعمال نشده این لفظ تفسیر نیامده تفسیران تفسیر شد. شد. من تا لایه دوزم حالا باید نگاه شدم شاید راجی به کلام دیگری باشه راجی به خود قرآن نیاران اون وقت این لفظ هم اینشالله خواهد آمد احتمالا عربی نباشه دیگه احتمال قوی هست که این لفظ عربی نباشه عبری باشه البته بنار یا علماء فعلا بر این که این لفظ رو اشتقاق نمکبیر از فره سفره سفر که در قرآن هست اما اصلا صحبتی هست که در صلب لغت عربی فسر نباشه اونی که از سفره است این اشتقاق بشه تا حروف جابجا بشه. اما لفظ تعویل در قرآن هست. در خود قرآن هست، در راجب قرآن هست. بعد از اینکه آیات قرآن رو محکم و متشابه قرار بده و ما یعلمو و الا الله یعنی لفظ تعویل رو برای خود قرآن به کار برده. لفظ تعویل غیر از اینکه بله به که ارستم که نه چون که ما تفسیر در روایت خود پیغمبر هم داریم البته قرآن بروید. حالا انشاءالله در محل خودش عرض دارم. من فضلان اشاره یا رو رو اینجا می‌گن چون تعویل در قرآن در غیر قرآن هم آمده مثلا این قصه ی یوسف هذا تعبیر اما تعویل در خود قرآن هم آمده. کلمه تعدیل در خود قرآن هم آمده و ما یعلم و تعدیل الله و راسخون فرعه حلا یه حاله بعد فرد می کنیم که فارغ اساس. و وقت بکنید چرا گفتن تفسیر کشف و قناع ان المراد با این که لحظه همین کار رو انجام میده یعنی اون به اصطلاح پرده یا فرسل مثلا هجابی که روی صورت بوده بزن کنار اون نقابی که روی صورت بوده بزن کنار بشه یه از تفسیر خب این مراد از نقاب چیه؟ خب اگه مراد مراد بوده کل رو باها با همون لفظ رو کشف القنا عن المراد این که کردید که در عباراتشون تفسیر رو به کشف القناع ولذا به تو بینل ناس نمیشه تمثال کرد با این روشن چون این تو بینل ناس یا کشف القنا حسن ظاهر با خود لحظا میاد چون شما وقتی صحبت می کنیم رو بیان میکنیم برای یعنی این, این کشف الغنا مرادش اینه روشن شد اون واقه اون قردهایی که در واقع هست اینه که تفسیر غیر از توبین الناس تمام بحث ما امروز روی این نکته این روی نکته خاص لحظی که ما یک مبلول لحظی داریم این لثوبین الناس با مبلول لحظی می سازه یک تفسیر داریم اون رسول به واقعیت ها هست این که میگن کشف قناع ان المراد این قناعی که میگن مراد کل لفظا دلالت میکنم یه آبیانا خب لفظ دلالت چرا این دلالت لفظ رو ما ت... تفسیر نمیدونیم اونی که تفسیره حقیقتا تفسیره عبارت از کشف این قناع و این حجاب و این پرده از اون مراد واقعی است و لذا چون کار تفسیر اینه انشالله از کارم چون رو خواب یه کمی توضیح این لذا وقتی یک طبیبی به شما میگه دولیوان آب بخو فرسونی یک کسی جنگیره میگه بله من هم جن حاضر کردم جن من گفته دولیوان این تفسیر کلام میگه شما خب اون دکتر روها تفسیر کلامی های نیز. کلام من با جنگیری و بینی و این حرف حل نمیشه کلامن را کسی میخواد بفهمه باز مثل طبیب باشه دکتر باشه تخصص داشته باشه واقعیت ها درک درد بکنه. سر اینکه که من پسر قرآن برعیه مال همینه اون تفسیر قرآن برن این مثل این که یک رمال یا یک جندیر با کلام علمی خیلی کلام ظاهره کلامی که خوب مشکل من دو لیوان آب بکن یکی چیزی که من با علم نجوم و اطلاق و مفصول نجوم قدیمه اصطلاح زمان فرهنگدان زحل و فلان گفتیم مثلا اون اختصار میکنه اینا تفسیر نیست این دقت نکونید سر اینکه در روایات از اول جلو به تفسیر گرفته شد من فستر القران القرآن ایه یا لا یعلمو تحویل او الا الله که اشاره ارکان کرد و راسخون فله میدونید که الان در این قران هایی که چاپه سعودی است الا الله مش رد زدن اون و راسخون فله میخورن اینجوری میخونن خیلی قرء اسو یعنی قرء اسو که سو رو اجرا كرده اختصار دادن اینجوری بخوان و ما يعلمو تعویله الا الله و فل علم يقولون این يقولون رو به در روایات اهل بیت شده الا الله و راسخون فالعلم اصل الله در این یک نکته دراعتی هم داره وقت این تعبیر رو ذقت بکنیم تعویدش رو راسه کلمه راسه و یکم امره خیلی عجیبه یعنی با این دو صفت انسان میتونه به حقیقت این تعبیر، اما به رأیه به نظره نمیشه این اجمال مثلا برای بعد چونجا برای توضیحش خواهم دار اونجا روشن خواهد شد سر این که اجازه داده نشده قرآن با افکار مختلف تفسیر بشه همینه الانم هم عملا شده یعنی واقعا با این خود قرآن به روایات کرده. ما که مثلا یکی میاد تفسیر عرفانی بر قرآن بنویسه یکی میاد تفسیر تاریخی بنویسه این کتاب جواهر رو ببینید تنتاوی مالمس عکس اثر پروانه مروانه دریاغا فلان به قول خودشه تفسیر علم علم روز برای قرآن مینیویسه البته خلاص اوغره ما جا نیافت اون حواشی داره من چن حوزه قصه دیگه میخوام دارم خیلی مدته ترویج کتاب تفسیر جواهر رو خیلی هم، آدم و کار علمی اون علهاش انصافا که این طرز والله بعدم اواخر اون دیوانه شد تو تیمارستان کوکه هر به هر حال این که آمدن هر کسی یک جور تفسیر این یک نکته خوب دقت بکنید اینجا مرض تفسیر و تعبیر یعنی ما یک مرز مذهل لفظی داشته دلیوان آب بخور راست رو تفسیر این خب راست میدونه این مرز چقدره این یه مقدار مشکل تعبیر کرده بصمه 4می که می‌خوایم بگیم این الان در مراد جدید اینا آمدن گفتن اگر ما از اون مقدار ظاهری لفظ رفتیم خواستیم چیز دیگری بکنیم وازا میشه تفسیر مثلا اهل الله البی یعنی اهل که معناش وازه اهل در این شوغانه نیست احتمالا من جعل اون فی محله اهل دیگه جعلو فی محل خداوند بی را حلال کرد الله و بی و احلال این خیلی واضحه. این آمدن گفتن تا این مقدار این معنای آیه است مذیل و اما اگر شما آمدین گفتین بی یعنی تمام انواع بی همونی که ما اسطلاحا اسمش اطلاق بباشید تا گفتین تمام انواع بی این میشه تفسیر ما الان توضیح و از اون هست که این تفسیر چی میشه چیجور جور های واقعه رو میخواییم برسیم؟ روشنه شد رو بحثت اگر شما این، این جور کلام اخباری ها به این نحنی که میگن تحلیل نشده اگر شما گفتید اهل الله ال این یعنی خداوند بی رو در نظر اوت امضا کرد سر جایش امضا امزاکه این میگه این میشه مبدول لفظی آیه اما این آیه معناش اینه تمام انواه به امضا ای شده این توصول اسمش چی میشه مطلب خوب دقت هست این میگه اگه ای گفتیم تمام انواه به مثل اون تفسیر میشه به سون میشه شما آمد این لایه های بعدی رو وارد شدید ندارد نقطه شد شما در اون مثال دو دیوان آب بکر مدرول لفظی واضح شد لایه های بعدی هم واضح شد این سوال خیلی لطیف این تاریخ شناسی خیلی روشن می‌کنه. ها میگن اگر شما آمدید خیلی از اهل لال بیت گفتید یک لایه اول تمام انواع به امضاء شده این لایه اوله این تمام این تصویر در حیا. میگن این جزء مدل لحظی است دقت بکن این کلمه اون بخش اوله این تو عالم تفسیر وارد نشده مثلا یک خیلی راحت بود داشتون اختلاف بین ملا محمدالدین استراوابادی و مرحوم مرقوم ناینی و مرحوم شیخ مرحوم و مرحوم ناینی میگن اخذ به ظواهر تفسیر نیست. حالا بناظر خیلی واده شد ما یک مَدل لحظی گذاشتیم یک تفسیر و باطن و های درونی گذاشتیم توی اهل الله بنابراین تحلیلش خیلی واضح و عرفی شد یعنی کاملا علمی نیست تو اهل الله البیت غیر از و الله البیت اول هم جای نرسید اخباری هم همین که شما میگین تم توش تمام که ندادند نداده اهل الله جميعا و آل بیو گویا اهل الله شما میگید چون لغز مطلقه و در مقام بیانه و خیلی نزده مراز جدی تمام بیاره تو اینطور. این میگه لایه اول میشه لذا اگر بخواهیم حمله به اطلاق بکنید این میشه لایه اول میشه تفسیر این از مدلول لغزی خارجه ادعای اصولی ها نه این جازه تفسیر نیست این لایه نیست، این همون مدلول لغزیست این اصلا جز تفسیر نیست این یک امر ارفیست یک مقدول ارفیست وقتی به شما گفت نان بخر قیل نظر چه نانی بخر خب اطلاق داره نان سنگهت نان لواش. این تفسیر کلام نیست اگر گفت نان بخر از نان لواش خرید. نمیتونه بشی که تو کلام من تفسیر کردید اینجا قد بکنید نمیتونه بگه تو کلام من تفسیر کردید میگه چه کوفت نان به هر قیدی نذرید. عادتاً هم باید بیان بکنید اگه مخدوم بجن نان خاصیه مثل سنگکه باید بیان بکنید. و چون شما قید نذرید من مثلا نان لواش تو چون رون بود نان مثلا سنگک خریدم. دقت بکنید و ان خواهد من مطلب رو اینجا گفتم این شد کارون در مراد جدی ها تخریم ما و اون جاهایی که ما میخواهید این به اصطلاح مداری لحظی رو بعد از مدلول تصدیقی معناه بکنیم چون مداری لحظی رو قبل از مدلول تصدیقی اونم یه نحو اطلاقه سابقا توضیح شهر کرده لیکن اطلاقی که الان بیشتر مورد نظره است که به عنوان مدلول تصدیقی در تصوری من خب این سؤیج باز بگم چون نمیخواستم وارد این بحث بشم چون چند دفعه سابقا نرسیدم ما اصولاً دو تا اطلاق داریم یک اطلاق همون عدم الغیبه چیزی دیگه نمیخواد هیچ نمیخواد قید نمیخواد احرازم نمیخواد بکنه یعنی نمیخواد ما احراز مقدمات حکمت بکنه یک اطلاق احرازیه احراز میخواد یعنی احراز به در مقام این تو ما هم شده اسم اینی که روز اطلاق احرازی یا اطلاق لحاظی یک اطلاق احراز میخواد اون اطلاقی رو که لحاظ نمیخواد ما اسمش داریم مدلود تصوری اون اطلاقی که لحاظ میخواد اسمش داریم مدلود تصدیقی این دو تا با هم قرار اینجوری میگذاریم حالا یه مثالی که چند بارم این مثال زدم باز تکرار می کنم یا دوباره کنه از در بحث جلد عربان کفایی در کتاب اصحاق آقا مثلا هم نایی هم اطلاع و سیقه یک ساز اینیت و تعینیت و نفسیه افارت مشروبیست اگر یه سیقه رو رو بکار بود اطلاقش اختضا کنی واجب اینی باشه اینکه کفایی باشه یکی انجام ده از بقیه ساخن باشه خلاف اطلاق اصلاح اختصار میکنه واجب تایمی باشه، تخیری نباشه. اصلاحش اختصار میکنه نقصی باشه، غیری نباشه. حالا مثال نقضی غیر لوازم، پس اینجا یک لباسی از ماله مولا قلاخو یک کلمش مرکر ریخته شده. به پسرش میگه به نوکر شد به عبدش میگه آب بیا. خب این احتمال میده آب رو برای این میخواد که لباسیشو شده میره که آب بیاره برمیگرده من لباس شسته شده یکی دیگه مثلا بچه‌ام داره لباسش شسته خب این احتمال میده آب نفسی نبوده به خاطر لباس شستن بوده اگه به خاطر لباس شستن بود آب نمیو احتمال اینه لباس آب خواصن نفسی بوده حالا لباسش خاک بشه رو میخواد به آب رو میخواد میخواد لباسش آلوده واجی میخواد نباشه. این اصطلاحا دروران هم بین نفسی و غیبی مشخص نشه احتمال میده عباستن غیری باشه احتمال میده عباستن نفسی باشه بنای علماء که اگر احتمال داد حمله بر نفسی باشه یعنی چه حمله داد بر... یعنی گفت عبیر اگر غیری بود آف بیار تا لباس هم رو بشید نگفت گفت بیا قیری نزد این زارش آب رو میخواد کار به لباس نزایی میخواد لباس پاک باشه آذر گوش این آب رو میخواد میگن اطلاق سیغه اختزای نفسیت داره حالا ببینید دقت بکنید ما به ذهنمون آمده که این کلام کفایی نوع نخلطی توش شده. اطلاق سیغه اختضای میکنه واجب تعینی باشه این به مدلول تصوریست این مقدمات حکمت نمیخواد این میتونه با هم دیگه خرش. یعنی اگر گفت آب بیاد همین که گفت آب بیاد ما احتمال میدیم یا آب می‌خواد یا نان می‌خواد بگه آب یا نان بیا آب یا شیر آب یا شیر میگه اطلاق صیغه اختصار میکنه که آب تعینی باشه تخییر نباشه اگر گفت آب بیار دلیل نفسی یا غیبی اطلاقش اختصار میکنه نفسی باشه ما حرفونی که این دوتا اطلاق فرق میکنه اگر آب گفت آب بیا همین که نگفت یا شیر همین که اسم یک چیز بود گفت این واجبه تعیین لحاظ نمیخواد دقت بکن میوخاد بگه متشکل مقام بیان بود احراز کرد در همین که باب ابیان چون در لغت عرب واجب تحلیلی یاد داره توش به دنیا میشه واجبه تحلیلی دقت میکنید در کفایه هر دور یک اصلاح گرفته من میخوام فرق بین این دو اصلاح رو بگم ما هرکمون اینه اگر گفت ابیان اطلاق داره قبول داریم اما این اطلاقش عدم و قیده. احراز نمیخواد لحاظ نمیخواد بگیم در او هر کسی یا به کار نبود میشه تخییم یا به کار بود میشه تخییم اصلا هر کلون حدی داره اگر گفت آب یا شیر میشه تخییم اگر گفت آب میشه تخییم همین که یا نبود میشه تخییم ناخر؟ لغزه اطلاق من اطلاق تکوّری یعنی عدم الغیب اصلا بعضی اصلا خودش عدم الغیبه در کلمات هم قدم ها و هم متأخرین فقها و اصلا میگه جا به جا شدن با هم دیگه یعنی ترجح نشده الان یه عبارات متن میوردن که مثال روشنی در نظر که جا به جا شده یک اطلاقش تصوری پس ما یک اطلاق داریم ب معنی عدم الغیب احراز نمیخویم دنبال مقدمات حکمت نیستیم دقت میکنید همین که این آقا قید نیه بود لذا این دستی هم که در بعض از این کتب و اصولمون تختیرانه که اطلاق یک مدید تصدیقی شد و تصوری دو تا اطلاق هم. هر دو درستن ما یک اطلاق تصوری هم داریم یک اطلاق تصدیقی هم داریم یک اطلاق نیست دو تا. در اطلاق تصوری مدید فقط لحظ گفته میشه و ده ده من قید چیز دیگه نمیخواید اعرازی میخواید لحاظ نمیخواید در مقام بیان نمیخواید چی نمیخواید اما در اطلاق تصریحی چرا باید مقدمات حکمت جاری بشه تا اون اطلاق منعقد بشه و نظر این دو سر مثال خوب دقت بکنید اگه گفت آب بیا شوبه تقی میگه واقعا تخریب نیست شما اگه تخریب میخواست گفت آب یا شیر بیا اگر گفت آب بیار شبهه قیری بدید میگیم نه چون تو مقام بیان بود چیزی که نبود نگفت آب بیار تا لباسمه بشورم نگفت آب بیار این باید احرانس بشه این پس یک اطلاق تصدیقی داریم یک اطلاق تصوری خوب دقت بکنیم ما حرف اون اینه اطلاق تصویری که در اصول مطلقه و عموم عمومی این اطلاق تتمه ممدول لحظی است جزء نیست دقیقاً اگر خداوند مصال فرموده اهل الله البیت دقیقاً که مراد جمعی انواع بیعه این جمعی انواع این دیگه اضافه نیست این لایه اول نیست این هم از خود کلام استفاده میشه فرق بین اصولی و اخواری ها شد پس بحث دیگر در قسم چهارم از مراد جدی این شد پس در بحث سوم مردول لغزی مراد که ب... به اصطلاح اون مردول لغزی هست اون تفسیر با واقع با اون عرض عریضی که واقعه داره بتون سبعه از در درده از روایات بتون سبعه داریم نسبت داده شد سبعین من تالا میگم سبعین رو روش بحث کرد سابقا صابقن بطور سبین رو من در روایت دیدم. لکن از کردم در یک دیگر روایت دیگری هفت هزار هجاب هست نه الله ما خللقحل جعل بین او و بین هم سبین هجاب این سبین هجاب تو کلام هم میاد ت تو وجود نیست تو همه جاده. این هفت هزار کردهبه داره. الان ممستر این حدیث در ذهن بنده در کتاب مرسادر اواز نجم و دین رازی اوائلش نایدم در کتاب حدیثی حتی احرسانت هم من نایدم شادم باشه در کتاب عرفاتی دیدم. این که کلام بله ما داریم از ائمه علیه توی جامال احادیث هم هست از که مرموم آیبون جلدی بهتر از صاحب ساحل و ساحلی یه از اوحادیثی که به دو اصول میخوره توی مقدمات جامال احادیث رو بردن جلد اول از این تازه شون در اونجا آوردن حجیت زواهر هم در اونجا آوردن مفیده آه مراجعه کنم اونجا تو بعض از زواهر داره, داره من کلمه لتن سرف و الاس سبین وچن سبین داریم. اما سبین بعد من نگذر سبین وچن داریم. و انل آیه دارین لتن سرف و الاس سبین و انل آیه کنه اول آفیشه و آخر آفیشه اینه داریم. لفظ سبین داریم. سبعت بتون هم داریم بطن هم داریم ظاهر و باطن هم داریم که این هم محل مقداری احتمال املائی مشکل املائی باشه چون در املائ قدیم بطن و باطن رو مثل هم می نوشتن چند دفعه احس کردم در خط کوفی علف متوسطه تو نمی اوگردم مثلا کتاب رو کتب می نوشتن الان شما متعارب به و حضا می بیزی. با اینکه هاضر خلاف بازیم کنیم لالکه در زلکه علف متوسط در خط کوفی نمی آوردن این توضیحاتش عرض کردیم در بعضی از روایاتش باطن و ظاهره، در بعضی از روایاتش بطن و زهره که من منم نمیدونم واقعا اون واقعش بطنه یا واقعش باطنه در کتابت بطن نمیشته شده و هر حال من فیلم وادی این بحث میخوایم بشم پس بحث سوام در مراد جدی اون واقعیت اینا ما تو اصول هم آوردیم مثال اصولی هم زدیم مثلا مفهوم لقب اگر گفتی شما زید آمد منزل من خب این بحث بنابر بحث مفهوم لقب تو کلام خبری هم بیاد اختصاص به انسان نشه ببینید آیا مفهوم این كلام غیر زید نبود؟ این معنا مفهوم نداریم دیگه سلب و ایجاب زید بود خیرش نبود یا اگر گفت اکرم زیدان یعنی زید رو اکرام بکن غیرش رو نکن خب شما از اون طرف بگید زید موجود خارجی است یک شخص معیمیه اون شخص معین طبعا موجود خارجی برگیگه قابل انتباق نیست اون قطعیه وقتی گوزید زید رو اکرام بکن زید شامل امر نمیشه شامل حسن نمیشه شامل حوزه نمیشه. نمیشه این قطعیه چرا بحث از مفهوم لغم بکن ما توضیح بگیم این که زید خودش از حسن نیست این مال واقعه مال لفظ نیست مال مدرور لفظ نیست تو بحث ملتوق و مفهوم خوب دقت بکنید بحث در اونجا روحش اینه آیا خود لفظ زلالت می کند بر این که غیر زید رو اکرام نکن؟ یا <تص> <تص> نه در واقع زید بر یک موجود خاص انتباه روی دارم بر دیگری انتباه اون مال واقعه نه مال لفظه مذلوق منطوق و مفهوم هم چون که منطوق برمیگرده به جانب مذلول لفظی مفهوم هم باید همینطور باشه پس این دو تا رو ما از هم جدا کردیم یکی واقع یکی مذلول لفظی بحث 4 آیا زواهر یعنی مثل اینکه قائل به, به عموم بشو از وقتی الان در کتوب اصول ما به طور متعارف دلالت عام رو به وضع میدونن دلالت مطلق رو به مقدمات حکمت الان متعارف... متعارف این توارفی دیگه اکرم کل عالمه نگفتن دیگه این بحث نمیدونن لایه اول نمیدونن به خلاف اکرم کل اما خب مطلعی در کفایه ایشون قائل هست که کل کل عالمه دلیل مقدمات حکمت داره این من توضیحاشو عرض کردم و عرض کردم سابقا هم خوندی زیاد هم ورده در عبارات اهل سنت بعض جا که مثال مطلق می خوادن مثال آنبیرا مطلق می پس یه خلقی بین مطلق و عام شده اجمالا بنا بر معروفی که الان بین علمای ما از من اون نایینی خود ما هم عقلانیون و های کویی مطلق نیاز مقدمات حکمت داره عام نیاز مقدمات حکمت نداره لكن در بعض از عبارات عام هم نیاز مقدمات حکمت داره و از بعضی عبارات قدم ها مطلق هم مثل آمنه اونم با وضعه انصافا در این ستا احتمال احتمال اول عرجه بخش پنجم از موارد مراد جدی این چون البته اختصاص به ما داره و در روایت ما داره متعرضش میشید اون مسئله حمله برقیه اینه که میگن مدلول استعمالی و مدلول جدی اراده استعمالی و جدی در میان عبارات ما رسمه متعارف اخیرن روایتی که میخوان حمله بر تقییه بکنن نگه ظاهر لفظ اینه اما مراد جدی این میست مراد جدی این مید. پس یکی از مواردی که باز مراد استعمالی در مقابل مراد جدی قرار میگیره مسئله یه و این انصافا درسته چرا؟ یعنی انسان مجروری در یک شرات خاصی کلام رو به جوری به کار ببره که مثلا اون ظاهرش مراد نباشه چون بحث تقیه جداگانه خواهد آمد روی مباحث ارث یه مقدار راجع به حقیقت تقیه شو به نظر من یه مقداری تأمل نشده یعنی حالا غیر از اینکه یک مقداری که خیلی سهر ظاهر است مثلا ایراد از امام باقر می‌خوان تقیه است موافق با رأی شافعی اصلا شاکی بعد زمان بعد از امام صادق به دنیا آمده حالا ایراد می‌گیرن صحب واضحه اصلا این مثلا امام صادق میگه از ابو حنیفه تقیه بکنه این خیلی ابهام خیلی مشهور از بین کلمات ما حتی بعضی کتابی نوشتن مصحف منتظر اصلا ابو حنیفه در زمان امام صادق در اون شأنی نبود که امام وضع امام صادق به مراتب از او بهتر بود اون شخصیتی نبود خودو اصلا, خود اصلا شخصیت حکومتی نبود دولت حکومت بود حوزه ای که فطر نوازی بحثش میشم این یک مقدار توی حوزه های ما تصورات ناجوی از واقعیت وجود داره که حالا با در وقت خودش توضیح بدیم و توضیح بدیم که این تغییر بیشتر در تعبیر یا در این که این مثلا همون تعبیر خوب دقیق رو خوب دقت بکنیم میتونیم بفهمیم تغییر است یا تعبیر مراد واقعی اینه به هر حال چون یک بحث مستقلیه من فعلا واژه اون بحثش اینجا نمیشیم شرایط و خصوصش در جای خودش فقط نقطه ای رو که میخوایم عرض ارز بکنم خدمتون اینه در این حمله بر تقییه عملا الان یعنی از قرن هشتون نه هم که دیگه فخر شروع کرد به شروع کرد به استدلال و استزها با یه مشکلی ما رو برو هستیم ما عده از فوقها کمی از روایات رو حمله بر تقییه می به و عده از فوقها مثل محسن صاحب هدائف اصلا اصلا مشکل اساسی روایات رو تقییه می هر جا سوال وزید اول سوال تقییه از ازم شن با میگه تو عمره را تقییه الی اصل کل بلغه تمام رو به تقییه. این واقعش چیه؟ این واقع مطلب حالا باغت نظر از عنوان واقع مطلب اینه که این رو در نظر گرفت. اینی که شؤون ائمه ما به خصوص امام ساده صباوند علی احتمالات تقییه در کلام ایشان خیلی زیاده به خصوص یکی هم به طور طبیعی در توقیعات عمه توقیعاتی که ما بیشتر از عمه متاخر ما هستن البته ما از عزت رزا داریم اما کمه بیشترین توقیعات ما از امام حادی و امام عسکری و بقیه الله از از عمه متوقع متأخر به اسلام ها توقیعات داریم توی اینا هم شبهی تقیعه هست لکن به طور کلی عرض میکنن به طور طبیعی ما چون الان مثلا تاب های دیگر که نسخای خطی دیگههی پیدا میشه به ذهن میاد اصحاب ما در همون عوائل مقدار زیادی از روایث تغییره را حذف کردن عملا دقت بکنیم نمیخوام بگم الان نداریم اما اون مقداری که رسسان سان طرقییه بوده عملا حظف شده مقدار زیادش حذف با که مقداری هم هنوز موجوده میه محوم ساقه داره اونطور میگه دیان کمتر میبینن ما یه تحلیل واقعی این شاید در خلال بحث آینده من شاید تو بحث خبر روشن تر صحابتش رو کنیم ببینید من عرض کردم 80 درصد در تا رو که ما الان داریم میبینیم بشه این که توسی برمیگرده یعنی به عبارت این مرحوم شیخ کلینی چون از کردن در این چهار کتابی که با کتاب معروفه کتاب کافی گذینشیست و فقیم اما کتاب تحضیب استفسار گزینشی نیستن یعنی مرحوم شیخ کلینی سر که از روایات روی که قبول داره و اگر در روایات خود کلینی مقداری تا هست این میردارشان کمه در خود روایت چون مبنا ایشان تاخیره ایشون مشکل نداره حالا شر اینکه واقعا مبنا ایشان تخیره. یا تاخیر نیست و این تاخیری که ایشان گفته چیه پس صاحبقران میگه تاخیر تاخیر ایشان با تاخیر صاحبقران فرق نمیکنه اینجا یه ش... دیگیری فقط من قرزن اشاره ای و سریه است مرحوم شیخ صدوق هم منعکس کننده افکار مکتب قم ایشون هم گذینشیه. خوب دقت میکنه. بین صدوقا به این کنیم بیسی درصد تفاوته. روایتی این قبول کرده اون نداره روایتیه اون قبول داره. این هست. اما مرموم شیخ تونسیدن در تحضیحان در استفسار گزینشی کار نکرده. فقط روایات رو آورده. در استفسار هرچی حدیث متعارضه آورده. کار به گزینش نداشته. سعی کرده یک توجیه کنه جمع تحضیل نه ابتداعاً سرکر روایتی بیاره که تایید متن مقنطیم تا تحضیل شرق مقنطی شیخ مفیده بعدم موقع روایت معارض و عبرزه سرکر دیجوری جمع بکنه یعنی کتاب تحضیل و استفسار مقام شیخ گزینشی نیستن الان اگر شما در هر مسئله تاارز من همیشه ارز کردم خیلی خوبه ما به جای بحثای کبروی در تاارز اگر ادهی هم آزارون از شما جمع بشن لوجهی گروهی تشکیل بده منم هم حاضر همکاری بکنم رو کل روایات متعارضه اول فقه بعد اصول بعد اقاعد بعد تاریخ هر که داریم در هر بابی اصلا کل روایات متعارضی جمع بشه ببین مثلا بحثه کبروی یک بحث به اصطلاح امزیو میدانی و بحث استقرایی و خارجی و معین کل روایات جمع بشه ابتداا نشیابی بشه بعد سر بشه حل بشه اگه کل روایات جمع بشه چیزی در حدود هشتاد درصدش منشاء شیخه و انصافا اینه که مرموم هرده مرموم آهای صاحب هدای بر تقییه میکنه این اون قسمت در کلمات شیخ آمده یعنی انصافا اگر ما تحضیب و استفسار رو کنار بگذاریم نمیخواب بیان تو روابط باقیه تقییه نیست خیلی کم بگذ کردیم یعنی این مرحله اینجوری نیست که چشم بندیم بکیم تراتی شیعه زیاده به ذهن خود من مقدار زیادش و اصحاب ما حفت کردن اصلا به ما نرسیده کلا از اون مقدار محضوف یک مقدارش شیخ رو بیر بعد از اون هست یک مقدار شیخ رو توجیه هم کرده سرکت توجیه بکنه که به نظر ما کافی هم نیست توجیهاتیشان علایه حالا حق در مقام این است که قبلش ش روایات تقییه ما زیاد نیستن بعدش شیخ یاد شده نه این که شیخ جر کرده شیخ حسین صحیب نهار کرده هم کتوب اصحاب نهار کرده اصحاب اونا رو هر کرده بودند. چیز دو مسئله آورده بخواه این مسئله کار من اجمالا گفتم و اما حقیقت تقییه بنا از همونی که نیاورده، تو کی تا وقتی نهیو نیاورده یکی تو کی تا وقتی نهیو باید تو دیگه نیاورده؟ همه رو باید به معزمون بیان نه همیشه اون الان کی چون نیومه هدف هست، نظر ایران مقبلی میخواد. یکشلون تا وقتی نهیو، حالا فرص احتوال همه رو تقییه کردن دقیق میکنم چون نیمو خواهد جزئیات فرق بشن این رو قرار از رو کنیم این قطعاً جزء موارد مسئله به اصطلاح مراد جدیه هست لکن از کردن یک توضیحاتی میخواد یه مقدارش در بحث مکاسر محرم بران زیر کز بران توریا مفرح میشه یه مقدارش میشه در, در بحث تارو الان دیگه باید این درست دو مورد دیگه هم از مباحث مراد جنگی و استعمالی رو حرف که بیدیم به بحث بدید